راهکاری برای اینکه یه مقدار و بشیم حداقل زندگی در حد کفاف داشته باشیم یکی از چیزایی که من باور نمی کنم بعد حقیقتا باور می کنم این هست که اگر کسی اهل دوری از گناه باشه و فقیر باشه اگر شنیدید باور نکنید یا پول خالی میبنده یا اهل تقوا نیست تقواه یعنی از گناه دوری کنید. کسی که از گناه دوری میکنه زندگیش آبرواندانه میچرخه.